خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و و على رسول الله و علی آله و اصحابه و من و على بعد کتاب دروس و البلاغه تعریف چار نویسنده مصری هست خب یه شرحی بنام شموس و هست که در هاشی کتاب آورده ولی ما سای میکنیم از شرح خود کتاب خیلی مختصرتر اینو این توضیح بودیم فقط اون اصل مطلب رو شما بگیرید که چه هست اصل مطلب رو بگیرید که چه هست این مقدمه هست انشالله خود مطلب رو به کرات یعنی تکرار کنید اگر بیخواید بلاغت خوب بشه به کرات این رو انشالله تکرار کنید تا در مراحل بعدی بلاغه های بزرگتر بخورید همینی که انسان یک کتابی رو میخونه اگر خوب تکرارش کنه بعدن کتاب بزرگتر رو اون کتاب بزرگتر خوب تکرار کنه بعدن کتاب بعدی رو خود کتاب های بزرگتر شرحی میشن برای چی؟ کچکتر شرح اینجوری هن دیگه مقدمه یا مقدمه این هم اصل مقدمه اون در جنگ ها و اون دلاورایی بودند که قبل از لشکر حرکت میکردند. اشون میگفتن مقدمه تول جیش نویسندگان هم قبل از این که ورود پیدا کنند به های اصلیشون یه سری مطالبی رو بیان میکنند به انوان چی مقدمه کتاب في الفصاحة والبلاغة ابتدام يد مقدمي ذكر ميكونا در رابطة با فصاحة وشي بلاغة مقدمتون خبر مشي كنكا رهست يعني هذه مقدمة هذه ان مقدميست في الفصاحة والبلاغة الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور میگه فصاحت در لغت خبر میدهد از بیان کردن و ظاهر شدن. نگفته الفصاحت و البیان و الظهور بخاطر اینکه که میگن معانی زیادی داره نویسندگانی در بلاغه بائين الفاظ كأبيرش كاردان الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور فصاحة در لغة خبر من هدأ البيان وظاهر شدان ظاهر بودان يقال در عربي گفتميشي افصح السبي في منطقه اذا بان وظهر كلامه گفتميشي افصح السبي في منطقه بعد كدر گویشش فسیح گشت چه زمانی این جمله رو عرب میگه؟ اذا بانه و ظهر کلامه زمانی که سخنش بیان بشه ظاهر بشه واضح بگرده پس تفسیرش کرد افسه رو که به چه معنی هست؟ به معنی بانه، ظهره و تقعو فی الاصطلاح و فصاحت در اصطلاح واقع میشه وصفا للكلمة، وصفي براي كلامه، والكلام براي كلام، والمتكلم براي متكلم يعني فصاحت. كلمة فصيح، فصيحة. ميتون الكلام الفصيح. ميتون بيجي فصيح. فصيح صفات. در اصطلاح فصاحت واقع میشه وصفی صفتی برای کلمه برای کلام و برای چی متكلم کلمه فصیح کلام فصیح و متکلم فصیح حالا بگید منظور از فصاحت کلمه جهسو ال اخر ابتدا یک ففصاحه کلمه فصاحت هست است صلابتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة فصاحة كلمة بتي معناست صالب بودناش از رماندقية حروف از تنافر ونفرة حروف رماندقية حروف صالب باش كلمة یعنی حروف, حروفش بگولی نباشن که بر زبان سنگین بشن گویششون سخت بشه پس صالم باشه از تنافر حروف دیگه از چه سالم باشه؟ و مخالفت القیاس و از مخالفت قیاس صالم باشه یعنی بر اساس قیاس سرفی باشه بر اساس چه باشه؟ قیاس سرفی باشه مخالف با قیاس نباشه خودش بعدا توضیحش میده مخالف قیاس به گونه هست برش مثال میاره و الغرابه از غریب بودن همون کلمه سالم باشه از ناشنایی هم چه باشه کلمهی نباشه که فسیحان و عرب زبان ها به بکار نبرند خب خود این خودش مفصل توضیح میده. میگذاریم سر جای خود شد پس منظور از فصاحت کلام سالم بودنش از تنافر حروف مخالفت قیاس و غریب بودنش و دیگه چیش؟ یعنی ناآشنایی بودنش بله فتنافر الحروفی وصفر في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان پس تنافر حروف رمندگی حروف وصفی در کلمه يوجب ثقلها على اللسان ایجاب میکند اون وصف سنگین بودنش رو بر چی؟ بر زبان منظور از تنافر حروف اون صفتی در کلمه که کلمه رو بر زبان چیکار میکنه؟ سنگیم میکنه و اون سرن نطق بها و گویشش رو هم چیکار میکنه؟ سخت میکنه نحو مانند اولشی ماند کلمه زش این درش تنافر حروف وجود داره معنیش رو آورده للمود و الخشد لش معنیش چی هست؟ برای به بکار میره برای جای سخت جای خشد جایگاه سخت و سفت و خشد هو خو والحو خو این هم تنافر حروف داره رمندگی حروف داره لنباتن تراه الابل این برای چی کار مرداره معنیش برای گیاهی است که شطور آن رو می, می خورد و النقاح للماء العظم الصافی النقاح برای چی بکار بیره برای آب زلال برای آب زلالو و خب والمستش زر يا اگر اسم فائلش باسم مفئولش بگريم مستش زر باله والمستش زر بعد اسم مفئولش بگريم چرا؟ للمفتول مفتول اسمه چه؟ مفئوله فس مستش زر معنیش بچه معنی هست؟ چیز بافته شده مستشذر به معنی چی هست؟ بافته شده پس این سه کلمه یه وش هوخو انوقاخ والمستشذر اینا مثال بودن برای چی؟ برای تنافر کلمه بale. پس منظور از فصاحت بودن کلمه از رمندگی حروف سالم باشه این چهار حرف این چهار کلمه فصیح نیستند چون درشون تنافر حروف وجود داره و سنگینند گویششون هست؟ سنگین است دیگه از چه چیزی باید سالم میبود؟ و مخالفت القیاسی ومخالفة القياسي، حرف حرف عطف. ما دقيقة كن. سلامتها من تنافر الحروف ومن مخالفة القياس. عطف باقتشود. بار. تنافر. مخالفات. عطف بر تنافره. وصالما شاء من مخالفة القياس. خوب. خودش میگه که مخالفت قیاس است کول الکلمتی غیر جاریه تل علی القانون الصرفی کول الکلمتی غیر جاریه علی القانون الصرفی منظور از مخالفت قیاس بودن کلمه جاری نبودنش بر قانون سرفی ببینید این معنی تحت لفظی بود حالا معنی روانش منظور از مخالفت قیاس یعنی این که کلمه بر قانون سرفی جاری نباشد طبق قانون صرفی نباشد که جمع بوق علا بوقات فی قول متنبی مانند جمبستن بوق بر بوقات مانند جنبسل بوق بر بوقات این مخالف با قیاس هست چرا چون جمع قلی که در نحوه میر شما خوندید چه هست روح ارواح قلم اقلام بوق هم میشه ابواق میشه ج جمش طبق قیاس میشه أبواق فس دل قداش تباشيد دلين قول شاعر متنبي فإن يكو بعض الناس سيفا لدولتين ففي الناس بوقات لها وطبولو خوب إن جا كلمة بوقات شاهدة ما سدرين شير كفصيح نيست ایلک فسیح نبودنش چه هست؟ چون مخالف با قیاس سرفیست مخالف با قیاس هست مخالف با قوانین و قواعد سرفیست معنیش این هست که میگه اگر بعضی از مردم شمشیر دولت باشند فا یک بعض الناس سیفن لی اگر بعضی از مردم شمشیر دولت باشند ففی الناس بوقات لها و طبولو بعضی از مردم دیگر شیپور و طبل هستند برای دولت بعضی از مردم سیف هستند برای دولت یعنی خودشون مستقیمان چکار بیکنند؟ جنگ میکنند؟ بعضی دیگر نه. شیپور و طبل هستند یعنی لشکر جمع میکنند. می کند چون شعپور می زدن لشکر جمع می شد اینجا داره شاه و وصف میکنه. کنه تو مثل بقیه شاه نیستی تو خودت شمشیر هستی خودت درگیر میشی، خودت میری برای جنگ اما بقیه شاه نه اونا همچون شیپور و بوغ که لشکریانو رو جمع میکنن. خب اذ القیاسو في جمعه للقلة أبواق فس قياس درجمه بوق جاست برا جمع قلة برا جمع قلة جاست بوق أبواق هست إني يكب صال و كموددة وكموددة فی قوله و مانند کلمه مودده در این شعر شاعر ان بنیه للی زَهَدَهُ مَالِ مالی فی صدورهم من مودده دقت داشته باشید این کلمه مودده هم فصیح نیست چرا چون بر خلاف قانون صرف هست قانون سرف میگه اگر دو تا حرف جنس متماسل با همجم شدند ادغام بشند این باید میگفت موده میگفتی پس فس مودده فسیح نیست برخلاف قانون سرفه ضرورت شعری سبب شده که اینجا ادغامش نکنه خب والقیاس موده و مودتون بالادغام تبقى قياس ما تشد موددا، موددة بشد يعني ادغام بشد بالادغاب اما بفك موددة بفك ادغابه موددة تيه بفك ادغابه والغرابة والغرابة صالح بود از تنافر حروف ما ننجد زهش هو خو صالح ميبود از مخالفتش با قياس ماننده بوقات که بوقش آورده جب قله بوقش آورده و مودده که اصلش باید می شود مودده و دیگه از سالم باشه کلمه تفصیح باشه و الغرابه از غرابت هم سالم باشه تفصیح باشه کونو الكلمتی غیر اللاهرت المعنى منظور از غرابت این از که کلمه معنیش ظاهر نباشد کونوالکلمتی غیر ظاهرت المعنا کلمه معناش ظاهر نباشد بودن کلمه غیر ظاهر بودن در معنایش خب این لفظ اینجور در بیاد خودش غیر فصیحه که این خودش یه فصیحی رو بگه که ما اینو باید معنی روان کریم یعنی کلمه منظور از غرابت این است که کلمه معنایش ظاهر نباشد نحو مانند تکعکعه مانند چی؟ تکعکعه خوب به معنی اجتماعه تکعکعه معنیش چه است؟ هست ولی این تکعکعه معنیش برای همگان ظاهر نیست وإفرانقعه بمعنى انصرفه بمعنى منصرف شدان وإطلخمه بمعنى اشتده بمعنى سخت شد إطلخمه بمعنى تي بس إنا غريب هستن تكاكا إفرانقعه إطلخمه كي هستن؟ غريب هستن ميقوياً یکی از لحات مریض شد یکی از لحات شد؟ مردم دوربرش جمع شدن فکر کردن جنی شده فکر کردن چی شده؟ خلاصه به سخن اومد و گفت ما لکن تککعتم علیه کما تتککعون علی ذی جنتن افرنقعو انی شما را چی شده است؟ جمع شده اید بر من همانطور که جمع می شوید بر کسی که زدگی دارد افران قیعوانی از من مرسرف شوید دور شوید بله پس ما تا اینجای کار سروران خوندیم که فصاحت وصفیس برای کلمه برای کلام و برای چه و برای متکلم ابتدا اومد فصاحت کلمه رو توضیح داد که گفت منظور از فل... فصاحت کلمه چی هست؟ یک سالم باشه از رمندگی حروف از مخالفتش باقی هست یعنی قوانین سرفی و غریب نباشه و غریب اون موقع کلمه چیه؟ فصیه تا اینجا کار مال کلمه تموم شدن دو بیریم روی فصاحت کلام بیریم رو چی؟ و فصاحت الکلامی سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد من فصاحة كلماته منظورة فصاحة كلام كهاز؟ فصاحة كلام يعني إن ككلام سخن از الرماندقی از الرماندقی كلماتكه با هم دیگر ترکیب شده اند با هم جمع شده اند سالم باشد از رمندگی کلماتی که با هم دیگر ترکیب شده اند چه باشد؟ خود کلمه فسیحه ولی این کلماتو که کنار هم میگذاری ببینی چی میشه؟ ببینی غیر فسیحی میشه. اونجا اگر یاد یادتون باشد در فضاهت کلمه کلمه از سه تشکیل می شد، از حروف تشکیل می شد. در فضاهت کلمه گفته بود که از تنافر حروف سالم باشه. ولی کلم از تنافر چی سالم باشه؟ از تنافر کلمات سالم باشه. به تو اجازه چون کلم از سه تشکیل میشه، از کلمه. کلمه از سه تشکیل میشه، از حروف. پس کلمه از تنافر حروف سالم می بود. فسیح بود و کلام از تنافر کلمات خود کلمه به تنافر میبینی فسیحه سبوکه ولی با هم که جمع بشند اونو که موقع بله تنافر پیش میاد پس و کلامی الکلامی سلامتهو من تنافر کلماتی سالم باشه از رمندگی و از ناسازگاری کلمات از جهت ترکیبشون با هم دیگر ومن زعف التعليف والزعف التعليف هم چه باشه؟ صالم باشه واز ديجه چه چهزه صالم باشه؟ يعني سوست في ورده ومن التعقيده وصالم باشه از تعقيد از أس بيشيده ودوشواره مع فصاحتي كلماته در اين حال كلماتش هنفسه باشد، ببين؟ کلمه به تکی <تصفيق> فسیح باشه و در ترکیب هم با هم دیگه فسیح باشن رمندگی نداشته باشن ناسازگاری با هم دیگه کلمات با هم دیگه ناسازگاری نداشته باشن حالا توضیحش بیده که به چه شکل الف فتنافرو وصفن الف نداره فتنافرو وصف فی کلامی پس تنافر وصفی در چی در کلام یوجب ثقلَهُ علل لسانی وصفی که ایجاب میکند سنگینی رو بر زبان وصفی مال کلام هست که کلام رو بر زبان چیکار میکنه سنگی می کنه رو بر زبان ایجاب میکنه. و عصر نطق بیهی و سختی گویش آن را یعنی و ایجاب می کند دیگه چی را؟ سختی نطق آن را گویش آن را پس تنافر وصفی در کلام ایجاب می کند رو بر زبان و سخت بودن گویش آن را نحو مانند فی رفعی آرش شرعی به سلوک یشرع ببینید کل این جمله درش تنافر وجود داره درش چه وجود داره تنافر چون این عین و فازیات چه شدند؟ بله فی رفع عرش شرعی مثلوکه یا شرعو خوب در بالا بردن پایگاه دیر شخصی مانند تو شروع می کند، اقدام می کند. خوب. این جمله این کلام درش تنافر وجود داره درش چی وجود داره؟ تنافر وجود داره و بریم جلوتر و مثال دیگر و قرب قبر حرب قبرو این مصره، مصره دوم بیت کاملیست، بیت انجوری هست و قبر حربین به مکان قفرو و ليس قرب قبر حرب قبر معنیش اینه که البته مصره اول و نو و گور حرب، حرب اسم شخصیه در مکانی بیعاب و الف هست قبر حرب حرب ابن در مکانی بیعاب و الف قرار دارد ولیس قرب قبر حرب قبرو و نزدیک قبر آقای حرب قبری وجود ندارد ولیس قرب قبر حرب قبرو و نیست کنار قبر آقای حرب قبری نه دیگه این خبرش ابتدا آورده بله این قربه اولی چون زرفه ببین چون چیه مقدم شده بر اسمش مقدم شده بر چیهش اسمش قبروه که در آخر اومده ولیس لیس قربه قرب قبر حرمین قبرو قبر اسم لیسه هست در آخر اومده هم چون زرفه مقدمه. خوب، رو برای تنافر آورده. مثال آورده برای چی؟ تنافر کلمات. مثال دیگری: کریم متى امدح او، امدح والورا معي و اذا ما لمت او وحدی میگه مادح و کریمیست که بزرگواریست که بتا امدحو امدحو والورا معی هرگاه که او رو مادح کنم مادحش میکنم و خلق هم همراه هم با من او مادح میکنند یعنی از بس که کریمه هر وقت که من او رو تعریف کنم مردم هم همراه هم من او رو چکار میکنند؟ تعریف میکنند و اذا ما لمتهو لمتهو وحدی اما زمانی که اون شخص و من مزمت کنم ملامتش کنم تنهایی ملامتش کنم از بس انسان بزرگاری دیگران در ملامت با من شریک نیستند آره این هم تنافر کلمات در شوجود داره پس اینا سه مثال بودن برای تنافر کلمات خوب بعد از تنافر کلمات چی میاد و ضعف تألیف و ضعف تألیف ضعف چه چی است کلامی غیر جاری على القانون نحوی مشهور منظور از ضعف تعلیف این است که کلام بر اساس قوانین مشهور نحوی جاری نباشد قول کلامی غیر جاری على القانون قانون نحوی مشهور کلام بر اساس قانون نحوی مشهور جاری نباشد اون موقع میگن ضعف تألیف داره سستی بندی داره چه داره کل ازماری قبل ذکری لفظا و رتبتان مانند اینکه زمیر ذکر بشه قبل از مرجعش لفظا و رتبتن دقت داشته باشید مانند این که زمیر ذکر بشه قبل از مرجعش لفظا و رتبتن قانون جمهور نحات میگه که مرجع زمیر یا لفظا و رتبتن ما قبل ذکر شده باشه یا حد روتبان و یا اما این طوری نیست که هم لفظا و هم روتبان مرجم مبادش باش. باشه. اگر اینجوری باشه، اون موقع فسیح نیست. باره. معنده این بیت شعر جز بناو هو قبل غیلانی انکبرن و حسنی کما یوجزا سینمارو دقت داشته باشید جزا بروهو ابالغیلالی اینجا جزا دادند پسرانش ابالغیلان را دقت داشته باشید در فارسی من جزا دادند پسرانش ابالغیلان را خب اینجا این زمیر هو که در بنوهو هست به چی برمیگرده به ابو الغيلان برمیگرده یکی برمیگرده خب اینجا ابو غیلان مفعول بهیه در قا در ادبیات عرب ال hazards رتبه کلمات ابتدا فعل میاد بعدش فاعل میاد بعدش مفعول به میاد مانند نصر زیدون امرن ابتدا فعل بعدش فاعل بعدش چی خب ما میتونیم بگیم نه ببینید اینجا دقت کنید نه اینجا فعلا ما میتونیم بگیم نه سره زیدن اخوهو یاری کرد زید را کی برادرش اینجا زمیر ما رتبتا به ما بعدش برمیگرده چون جایگاه زید بعد از اخوهوه ولی لفظاً به که برمیگرده؟ به ما قبلش نصر از زیدن اخوهو زیدن مفعوله اخو فائله متعجی شدید؟ ولی در این مثال نه در این مثال هم لفظان عمل غیلان بعد از این هو اومده هم رتبتن چون عمل غیلان مفعوله و مفعول بعد از فائل میاد بعد از سی میاد متعجی شدیم آموسا؟ بنو فائله خود درسته همینو داریم میگیم ما اینو داریم میگیم که زمیر مرجش مفعول بهیه اینجا مفعول بیهی هم رتبتاً ما بعده و لفظه هم ما بعده اینجا اگر اینجوری بود جزا ابل غیلانی این موقع فسیح بود زمیر به چی برمیگشت؟ به ما قبلش برگشت ولی در این مثال زمیر ما هم لفظا چون ابل غیلان ما اومده هم رتبتا رتبش ما بعد مفعول به هی ما بعد فائله متوجه شدید پس جزا فعل مازی بنو فائل هو مضافل اومده اما مفعول به الف، علامت نسب الغیلانی مضافل اومده متوجه شدید که اینجا زمیر ما هم رتبتا و هم لفظا ما اومده پس این ضعف تعلیف داره معنیش اینه که فرزندان ابو غیلان پدر را در حالی که پیر بود و نسبت به فرزندان نیکی کرده بود همان پاداشی رو دادند که به سنمار داده شد همان پاداری پاداشی رو فرزندان ابو غیلان به ابو غیلان دادن که به کی داده شد؟ سنمار که میگن سنمار بنا و معماری بود که قصری رو برای شاهی از شاهان عرب به اسم نومان بنا کرده بود بعد از اینکه که قصر رو کامل کرد شاه دید که خیلی قشنگ بناش کرده و نخواست که همچوری قصری برای دیگران بنا بشه سنمار رو از همونجا بالا انداخت تا برد این مثالی شد برای عرب ها که میگن جزاهو جزای سنیمار جزای سنیمار بهش یعنی نیکی کرد ولی در آخر چکارش کردن تباهش کردن حالا این شعر اینو میگه میگه فرزندان ابل غیلان در حالی که پدرشون پیر شده بود و برای آنها حسن فعل داشت نیکی کرده بود همون جزای رو به پدر دادند. خوب پس سالم باشه از تنافر کلمات از ضعف تعلیف و دیگه از چه چیزی سالم باشه و تعقید و سالم چی؟ تعقید منظور از تعقید چی است یکون الکلام خفی دلالتی على المعنى المرادی تعقید یعنی از عقده بیاد یعنی پیچیدگی یعنی دشواری تعقید یعنی چی پیچیدگی دشواری پس کلام از پیچیدگی و دشواری سالم باشه وتعقید است ان یکون الكلام خفیه الدلاله علی المعنی المراد منظور است تعقیدی است که کلام دلالتش بر معنای مراد گوینده دشوار باشه غریب نه بر اون معنای که براش وضع شده بود پنهان بود ولی تعقید نه بر معنای مراد گوینده خفی باشه مراد گوینده رو به خوبی نرسانه مراد گوینده رو به خوبی نرسانه پنهان باشه پوشیده باشه بر مراد گوینده بر دلالت مراد گوینده خب تعقید خودش چه هست؟ اما من جهت اللفظ این خفا این پوشیدگی، میتونه از جهت لفظ باشه و میتونه از جهت چه باشه والخفاو اما من جهت خفا میتونه از جهت لفظ باشه یعنی آقا بگونه این جمله رو درست کرده باشند که درش پیچیدگی باشه؟ به سبب چی؟ به سبب تقدیم و تأخیر و فصل به سبب تقدیم و تأخیر یا فصل خبر رو میاره قبل از مبتدا موصوف و متعلق و ازش جدا میکنه نمیدونم بیاد بین مبتدا و خبر فاصله میاره بین موصوف و صفت کار میکنه؟ فاصله میاره بین مضاف و مضاف و کار میکنه؟ خلاصه اینو میگن؟ خفای از جهت لفظ از جهت چی از جهت لفظ پس خفا اما بن جهت لفظ پوشیدگی یا از جهت لفظ است به سبب تقدیم او تاخیر او فصل به سبب تقدیم یعنی اون که حقش مقدم بودنه شما در آخرش بیاری و اونی رو که در آخر بیاری در ابتداش بیاری یا یعنی اینکه که کلماتی که فاصله نباشه مثل مبتدا و خبر، موصوف و صفت، حال و ذل حال بیاری با یک کلمه عربی بینشون چکار می‌کنی؟ فاصله بیاری. ک قول المت و یسمی لفظیا این نوع تعقید بهش میگن تعقید چی؟ لفظی. ک قول المتنبی مانند قول شاعر متنبی جفخت خط و هم لا یجفخون بها بهم شیامن علی الحصبل اغری دلائلو این قدر این بیت رو به هم زده بین فائلو مفعولو که کلن معنی چی شده معنی اصلا دشوار شده خودش گفته تقدیرش چونه چی هست فا این تقدیرهو تقدیر این شعر ترتیبش برای این اساسه جفخت بهم شیمون دلائلو علالحسب الاغرری و هم لا یجفخون بها اصلش اینجوری ها معنیش چه هست؟ معنیش این است که میگه فخر ورزید به آنان اخلاقی که از نشانهای انسانهای نیک ارجمند است و هم لا یجفخون بها و آنان به آن اخلاق فخر نورزیدند افتخار؟ نکردند جفخت بهم شیمون دلائلو ببینید اینجا شیمون فائلی دلائلو صفت شیمون ولی شما میبینید بین شیمون دلائل چقدر فاصله هست شیام که فائل جفختی کجا اومده در این میتشیر جفخت بهم شیمون دلائلو علل حسب الاغري وهل لا يجفخولا بها چطوری به ریفته؟ ریخته اینو میگن تعقید لفظی ترجمه کنم بله بله یعنی اخلاق اخلاقی که از نشانه انسانهای هینی که است، به آنان افتخار کرد. به آنان چی کرد؟ افتخار کرد. ولی آنان به آن اخلاق افتخار نکردند. ولی آنان به آن اخلاق افتخار نکردند. این همچنین انسانهای بزرگی بودند که خود اخلاق او نسبت به آنان افتخار کرد. بله. و اما من جهت معنا یا اینکه خفا از جهت هست؟ از جهت معناست. به سبب استعمال مجازات و کنایات، به سبب استفاده از مجازها و کنایات، لا یفهم بها منظور از اون فهمیده نمیشه. به سبب کنایات و مجازاتی که شخص گوینده به کار برده منظور از آن فهمیده نمیشه و یو ما تاقیدا معنویا این نوع تاقید تاقید چی نامیده میشه؟ اگر به خاطر لفظ بود بشه میگن تاقید لفظی اگر به خاطر کنایه و مجازات و این مسائل بود بشه میگن تاقید معنوی نحو قولی که مانند این سخن تو ماندین که بگی نشر الملك و السنته في فی المدینه شاه زبانهاش رو در شهر پخش کرد ببینید اینجا منظور از گوینده از السنه جاسوس بوده ولی در زبان عرب برای جاسوس اویون رو بکار میبرند نه السنه رو پس این درش تعقید معنوی وجود داره درش چی وجود داره؟ موریدن جواسیسهو موریکی شخص بیاد این جمله رو بگه که نشر ال ملک ال فی المدینه پخش کرد شاه لسانه اش رو در شهر زبان هایش رو در شهر ولی منظور از لسره بری در جاسوسه او منظورش جاسوسا باشه اون موقع درش چی وجود داره تعقید وجود داره تعقیده معنوی وجود داره چون کنایتا <تصفح> به برای جاسوس چی رو به کار می برند؟ رو به کار می نه چی رو؟ رو ایجا اومده کلمه ای رو به کار برده گوینده که مراد پوشیده می مراد بر مردم چی می و سواب سوابش این هست نشرا عیونهو و قوله و دیگر سا اطلبو بعد الداری و تسکو بو عینای لی تجمودا می خواهم دوری خانه را از شما می خانه که از شما دور باشه لی تقربو تا نزدیک شوید می خانه از شما دور شود تا خود تا چی شوید؟ نزدیک شوید و تسکو بو عینای دموع لتجموده. و می چشمانم عشق بریزند تا این که خشک شود خب لتجبودا تا عشق خشک بشه منظور حیثو کننا بلجبودی انه سرور میگه کنایه کرده از کلمه لتجبودا سرور و شادی رو و چشمانم عشقا رو بریزه تا خوشحال بشه ولی کلمه تجبدا رو بکاروارده در حالی که در زبان عربی از جمود کنایه از جبود چه هست؟ بخل هست. موقع گریدن. یعنی عشق نریختن هرگاه چی؟ گریه کردن. عشق نریختن هرگاه چی؟ گریه کردن. پس اینجا تجمودا رو برای شادی آورده اینجا این شاعر. نیتش کناه بوده از شادی کردن. میخواهم دوری خانه را از شما؟ تا نزدیک شوید و میخواهم که چشمانم اشک فرو ریزد تا اینکه خشک شود یعنی تا اینکه خوشحال بشم چشمانم اشک بریزه تا چه شوم ولی کلمه تجود کنایه برای خوشحال شدن نیز در عربی معمولاً لذا این درش تعقیدی چی وجود داره بعنوی چون کناه ای رو به کار برده که اون کنایه مرسوم نیست شدیم موسى بله خب پس تا اینجا کار خودیم اما وفصاحه المتکلم توضیحه وفصاحه المتکلم ملکه یقتدر بها علی التعبير عن المقصود بكلام فصیح منظور از در ابتدا اگر یاد مبارکتل بیاد گفته بود که فصاحت صفتی است برای کلام برای کلام و برای با برای کلمه توضیحش داد که منظور از فصاحت کلمه چی سالم بودنش از تنافر حروف مخالفت با و غرابت بعدش اومد فصاحت کلامو توضیح داد که در این شماره خوندیم که فصاحت کلام این بود که از تنافر حروف از تنافر کلمات که با دیگه جاب شده ان سالم باشه از ضعف تعلیف، سالم باشه و از تعقید سالم باشه حالا اومده رسیده به چی به فصاحت متکلم که منظور از فصاحت متکلم چی است؟ ملکه تو یقتدر به عل التعبير عن المقصود بکلام فصیح. منظور از فصاحت متکلم ملکه است که بتواند با اول ملکه تعبیر کند مقصودش رو با کلامی فصیح. ملکه است که بتواند با آن تعبیر کند مقصودش رو با کلامی بتواجی شدید؟ فی ای غرض امکانت در هر هدفی که باشه در, در زم باشه، در مدح باشه، در رسا باشه در هر غرضی که باشه اون مقصودش رو بتونه با کلامی فسیح چکار کنه؟ تعبیر کنه پس زمانی که متکلم این ملکه رو داشته باشه فصیح است جست فصیح است پس فصاحت در متکلم صفت پایداری است خود همین ملکه به معنی پایداری یعنی اون چیزی که در وجود آمدی در وجود انسان پخته شده بهش میگن ملکه ذهن شده یعنی پایداره درش درش ثابته نبیگه این ملکه زهرشه؟ بله پس فصاحت متکلم صفت است که گوینده بطوره مقصودش رو با سخن فسیح ادا کند در هر هدفی که باشه. در هر غرضی که باشد خوب حالا بیایید روی جلوتر مطلب و فی اللغتی الوصول والانتها فصاحتو بزرگان در کلمه در کلام و در متکلم توضیح داد فصاحتو چکار کرد؟ حالا چی رو توضیح میده؟ بلاغه رو فصاحتو فهمیدیم حالا چی رو به ما توضیح میده؟ بلاغتو و البلاغتو فی اللغت الهصول و بلاغت در لغت به معنی رسیدن به معنی انتها بلاغه فی المجده غایتاها اِنَّ عَبَاهَا و ابا شعر شر تو زهر نیز مولوی ماموسا بله خب ولش کنید با کاری بود نداریم پس بلاغت در لغت به معنی رسیدن است به معنی منتحی شدن است یقال گفته میشه در عربی بلاغ فلانون مرادهو فلانی به مرادش رسید فراني بأرمانش رسيد إذا وصل إليه چه زماني ينو بيگان؟ زماني كي برسي پس بلغم يعني رسيدة نه وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها چه زماني بيگان بلغ الرقب المدينة؟ كاروان بشهر رسيد زماني كي منتهي بشهر بشه موقعي كي بشهر برسي فلما انتهى إليه وقتي كي بيو رسيد ها؟ خوب و تاقو فی الاصطلاح وصف للکلام و دقیق داشته باشید و واقع میشه در اصطلاح وصفی برای کلام و برای متکلم دیگه برای کلمه نه اگر یادم مبارک تول باشه که چند دقیقه پیش خودیم در بحث فصاحت خودیم که فصاحت واقع میشه وصفی برای کلمه برای کلام و برای متکلم بگیم کلمه فسیح کلام فسیح گوینده فسیح به ختیم بگیم ماشاءالله خطیب فسیحیه ولی بلیغ نه به کلمه نمیگن بلیغ به کلام میگند به متکلم میگن اما برک به کلمه چرا؟ زیرا معنی بلاغت زمانی میگن که کلام بریقه که مطابق با مقتضای حال باشه و این میتونه فقط صفتی برای چی باشه؟ برای کلام باشه ما میگیم سخری گفت که مطابق با مقتضای حال بود اما کلمه که یک کلمه یه تو با یک کلمه میتونی مقتضای حال بیان کنی؟ نه. یعنی حالت گوینده و جمله و تمام اینا رو در نظر بگیری؟ پس نمیتونه صفتی برای کلمه باشه؟ ف ف, ف, ف الكلام بلاغه كلام چی است في الاصلاح وصفا للكلام والمتكلم ودار اصلاح واقع بشي وصفي براي كلام و براي متكلم فبلاغه الكلام بلاغه كلام به چه معناست مطابقه طول الحال مع فصاحته منظور از بلاغه كلام این مطابقت داشته باشه با مقتضای حال ما موسا. منظور از بلاغت کلام بیگن کلام بلیغ منظوری که مطابقت داشته باشه با چی؟ مقتضای حال در این حال فسیح هم باشه در این حال چه هم باشه؟ پس هر بلیغی فسیحه ولی هر فسیحی بلیغ ممکنه فصاحت درش باشه ولی با متناسب با مقتضای حال نباشه مثلا در مدح شما بیایید مدح طولانی میکنید بعدش نگاه میکنید که این طرفی که شما داری با حرف میزنید زیرکه یا احمقه اگه زیرک باشی خب مختصرتر بیان میکنی ولی کادر باشه خیلی مفصل با حرف میذاری مخ... منظور از مقتضای حال اینا رو در نظر میگیری اینا میگن مقتضای اگه تو سخنة متناسبة مع مقتزاي حال باشي والمقت بليغي وسخنة تيه بليغي در اين حال بعد والفساهت قبل هنم شد بعد داشته باشي بعد كي باشه. باشي والحال الان دار حال ومقتزار رو توزيه بدا زي جابه باد دا. الان دار چير رو توزيه بدا والحال ويسمى بالمقام هو الامر الحامل للمتكلم أن يورد عبارته على صورة مخصوصة حال که مقاب هم نامیده میشه امری است که وادار میکند متکلم رو که عبارتش رو بر شکلی خاص ایراد بکنه وارد بکنه برخورد از حال که مقاب نامیده میشه امری است که وادار میکند متکلم رو عبارتش رو بر شکلی خاص ایراد بکنه وارد بکنه والمقتزى منظورة المقتزى ويسمى الاعتبار المناسب كاعتبار المناسب همنا بيدي مقتزى هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة ان صورة خاصة كإبارة ما رشوارد بيش بيش بيان مقتزى مثال بيسي مثلا المدح مدح حال يدعو لإراد العبارة على صورة الاتناب مثلا مدح حالتی است حالی است که اقتضا میکند که عبارت به شکل اتماب وارد بشه ببینید زمانی که شما میخواهید یکی رو مدح کنید این مدح حالی است که چه چی چیزی رو اقتضا میکنه چه چی چیزی رو طلب میکنه چه چی چیزی رو میخواد اینو میخواد که عبارت به شکل طولانی وارد بشه میخوای یکی رو مدح کوری دیگه و ذکاء المخاطب حال یدعو لی علی ها على و هوشیاری مخاطب فهمیدگی مخاطب حالتی است که طلب میکند که کلام به شکل اختصار به شکل خلاصه وارد بشه مابوسه حسی پس مدح حالتی است که کلام به چه شکل وارد بشه طولانی و زیرکی و فهمیدگی مخاطب حالتی است که طلب میکنه که کلام به چه شکل براش وارد بشه مختصر واحدگی مخاطب حالتی است که اینو طلب میکنه که کلام به شکل مفصل براش وارد بشه متوجه هستید فکل من المدح والذكاء حالون فس حريكي از مده و الزكا چه سه؟ حال حسد وكل من الاتناب والإيجاز مقتزد اتناب وإيجاز مقتزد حسد اتناب وإيجاز چه سه؟ وإراد الكلام على صورة الاتناب والإيجاز مطابقة للمقتزد ووارد كردن السخن بشكل طولاني و بشكل خلاصي يعني براي اون شخصي كي و که با تولانی باشه تولانی وارد کردنش و اون جایی که خلاصه بشه خلاصه کردنش اینا مطابقت با چه هستند مختaza هستند تا این جای کار تمام شدی هن هنوز نه ادامه داره خلاصه شو بیکه و بل... دوباره بیکه و بلاغه المتكلمی ملکه یا قتدی رو بیه علی التعبیر المقصود بکلام البیغ فی ای غرزن کنه بلاغت متکلم صفتی پایدار است که صاحبش میتواند به وسیله آن صفت پایدار در هر هدفی که بخواهد مقصودش رو با کلامی بلیغ بیان کند جان اونجا بلاغت کلامو با گفت متکلم آها بله بلاغت کلامو گفته بلاغت بله بله بلاغت کلامو گفت بله الان بلاغت کی رو میگه متکلم اینو بود هنوز بیان نکرده بود نه بله بلاغت متکلم صفت پایدار است که صاحبش میتونه به وسیله آن تعبیر کنه مقصودش رو با سخنی بلیغ بلاغت متکلم صفت است که صاحبش میتونه به وسیله آن مقصودش رو با کلامی بلیغ تعبیر کند بیان کند خوب تا اینجا کار همه چیزو گفته حالا یک نقطه رو در نتیجه آنچه که گفت یک نتیجه خوبی گرفته اونو هم بیان بیکنه و یعرفت تنافر و به ذوق بیگه تنافر و رمندگی با چه چی چیزی تشخیص میده داده بیشه با وسیله زوق با وسیله سلیقه سالم با وسیله زوق سالم تشخیص داده بیشه و مخالفت به بسرف مخالفت قیاس با چه چی چیزی تشخیص داده بیشه با وسیله صرف و ضعف التعلیف و التعقید اللفظی به سست پیوندی و دشواری لفظی با چی چیزی تشخیص داده میشه؟ با نه نحف و نه که میگه جای فاعل کجا باشه، صفت کجا باشه، موصوف کجا باشه و الغرابت به الاطلاع على الکلام العرب و غربت کلمات با چه چیزی تشخیص داده میشه؟ با زیادی دانش بر کلام عرب اطلاع بر کلام عرب زیاد بشه تو میدونی که این کلمه غریبه های دیگه این روز کار نه بردند. و تعقید المعنوی بالبیانی تعقید معنوی با چه چی چیزی تشقیل داده میشه کنایه و مجاز در کدوم کتاب بحث میشند در بیان در چی؟ در بیان معانی و بیان و بدی دیگه پس تا معنوی در بیان تشخیص داده به بیان تشخیص داده میشه و الاحوال و به بالمعانی و حال و مقتضا با چیزی تشخیص داده میشن به وسیله علم معانی فواجب علی طالب البلاغه پس در نتیجه چیز جالبی داره میگه پس در نتیجه واجب است بر کسی که بلاغه رو میخواهد کسی میخواهد بلا بلیغ باشه فواجب على طالب البلاغه پس واجبه بر کسی که طالب بلاغته کسی که خواهنده بلاغته چه چي چیزی واجبه؟ معرفت اللغتی والصرفی والنحو والمعانی والبیان مع کولی سلیم الذوق. کثیر الاطلاعی على کلام العرب پس واجبه بر خواهنده بلاغت اونی که بخواد بلیغ بشه شناخت لغت صرف نحف معانی بیان در این حال؟ ذوق سالیمی داشته باشه و بر کلام عرب اطلاع زیادی داشته باشه اطلاع کی داشته باشه؟ زیادی داشته باشه کتاب شیریری بود الله متعال توفیق بده خیلی مختصر و مفید انشاءالله این بحث رو به پایان برسانیم تا برای ما هم صدقه جاریه شده باشد